بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الیه نستمه قال الله تعالی هوا الول و الاخر و الله و الباطن و هوا به کل شیعن عدیم در سوره شریفه حدیده است تمام متفکرین عالم به یه ظاهر و یه باطنی در این عالم معتقدن حتی مادی ها همه معتقدند که این عالم یه ظاهری داره یه باطنی اون تا اون باطن رو گاهی اسمش رو جوهر گذاشتن پلاسپه گاهی مادت رو مواد گذاشتن گاهی انرژی گفتن گاهی اتم گفتن به شکل‌های مختلف ظواهر آلم چیزی دیگه است اون جوهر و باطن اسم دیگه ای داره ولی همه چه مادی ها چه الهیین به باطنی برای این عالم قائل هستند. در این قسمت همه مشترک. تفاوت اصلی اینه که معمولاً باطن در ظاهر جلوه میکنه مثلا اگر خدای نکرده شما عصبانی بشین رنگ چهرهتون میپره مثلا یا فرض کنید خجالت بکشید قرمز میشید و از این به داخل ظاهر و باطن با هم رابطی داره اگر ما با باطن عالم رو بی شعور و بی ادراک و بی اراده بدونیم یه مشکلی برای ما پیدا میشه با که پس این ظاهر که اراده و شعور و ادراک و تدبیر و اینا آفریده شده این چه نسبتی داره با باطن بی شعور بی ادراک اونطور که شما ما دین ها تریلستا تصور میکنن که ادراکی نداره شعوری نداره آگاهی نداره الهی ها میگن نه از کنم که اینا با همدیگه ارتباط دارن و تناسبی با همدیگه دارن ولیزا باطن عالم رو یه باطن کره نادان و ناغاه نمی دانن. موضوع اساسی که اینجا مطرحه نوع ارتباط این ظاهر و باطن با هم چیه چجوری این دوتا با هم ارتباط دارند ظاهر و باطن خب مادی این که فلسفه روشنه اتم های هست و اینرژه هست و اینا جمع میشن ترکیب میشن یه ظواهر رو تشکیل میدن اینا ولی برای الهی این بیان اینکه باطن آدم با ظاهر آدم ارتباط داره دو تار مشکل هستن یه دسته ایشون که وحدت وجودی میگن ظاهر و باطن عالم مثل موج و دریا دریا وقتی که ساکن موجی نیست همون دریا وقتی که متعین بشه موج بزنه ظاهر میشه انواج باطنشون آبه جهان نسبت به باطن عالم یه همچی وضعی داره با توجه به که از خواهم که باطنم باید با این ظاهر متناسب باشه از علم و قدرت و این سپاد ولی اینا در این مثال دوچار اشتباه شدن چرا؟ به جهت اینکه که در مسئله موج و دریا که خیلی اورپا مخصوصا به این مثال میزنند. یه دیگری است که دخالت کرده که موج دریا پیدا شده و اون آمل فشار هواست فشار هوا روی دریا موجب شده که موجی ایجاد بشه پس بنابراین خود دریا فی نفسه نیست که موج بزنه اگر فشار هوا نباشه موج برداشتن میشه دریا دریا دریاست ولی در مورد عالم که تصور ما اینطوری نیست که خداست و این جهان و یک کسی نیروی دیگه خدا رو بازار میکنه که فرض کنین که مخلوقات رو جبرن ایجاد بکنی اینطوری که نیست که یه دصدیریشون که وحتده وجودی نیستن اونا تصور یهودی دارن یعنی خداوند یه است جدا از عالم عالم رو در 6 روز آفریده روز هفتم چون که در تورات در سفر تکویر سفر پیدایش هست روز هفتم استراحت کرده چون خدا خسته شده بود و بنابراین یه موجودی است درست مستقل از عالم مثل یه بنایی که بنایی رو میسازه بعد از میره خستگی در میکنه به همین جهت روز شنبه یا سبت رو روز تعطیلی قرار دادن که کار نکنیم چون خدا اون روز استراحت میکنه ما باید کار نکنیم اون روز استراحت کنیم بله این در همون سفر تکوین طورات باشه بخونیم کاملا روشنیم که خداوند در 6 روز جهان اون آیه که تو قرآن میگه خداوند در شش روز جهان را آفرید و ما از مستنامه لغوب خستگی به صاحبت ما راه نیافت در جواب تورات تعریف شده رو میده مخصوصا این آمده که اونو اصلاح کن کاری نداری اینا هم دو یه مشکلی هستن و اون مشکل اینه که تصورشون از خداوند یه موجود مستقلیست که آمده یه مدتی به این عالم مشغول شده کارای کرده و بر ربطه پیکارش پس اون باطن عالم نمیشه ما سخنمون این است که باطن همین عالم که با این عالم همراه اون چیه؟ اون کجاست؟ اون چه جوری؟ حرف مادی ها رو که کامل قبول نکردیم گفتیم بله انرژی و نبدم اتمی ها هست ولی خود اونها چه جوری تنظیم شدن خود اونها چه جوری از هم تغییر میکنن خود اونها نظامشون چه جوری برقرار شده لذا اکتفا به اون نکردیم به حرف اون گفتیم اونم ظاهره چون که نزد علما ظاهر شده نزد عوام و نه علما میدونن اتمی از پس بس اونها هم ظاهره هنوز به باطن باطن نرسیدیم خب پس ما این خدا رو یهودی ها یه موجود مستقل میدونن میاییم تو عالم مسیحیت تو آدم مسیحیت خدا یک حقیقتی است که میتونه به شکل انسان در بیاد چون یه دستهشون میگن عیسی پسر خداست یه دسته میگن خود خداست به این صورت در اول انجیل یوحنا عبارت اینطوری ابتدا کلمه بود کلمه نزد خدا بود کلمه خدا بود اون کلمه به صورت بشری در من مسیح پر از نور و راستی اینکه قران یه جای گفته بعضیشون میگن عیسی پسر خداست بعضی میگن ان الله هوالمسیح ابن مریم خدا خودش همون عیسی ابن مریمه یعنی صورت گرفته به صورته اوراق پای ما هم عدهشون همینطور گفتن وحدت وجودیا میگن شمشیر شد و در کپه کرار آمد منصور شد و بر سپر دار آمد هی گفت ان هی گفت آناله. یعنی خلا میتونه متشکل و متمثل بشه به صورت شمشیر علی، به صورت مرز کنم که پلان شیخ، پلان قوت، پلان منصور حلاج بینته. باهرال اینم از کنم که دو چهار اشکالات هیست. از جمله اشکالاتی که خود متفکری هم برخوردون کردن این که اون حقیقت نامتناهی که قائم به ذات بود چطور محدود شد به صورت عیسی بشری و اون که جسم نبود اصلا خالق جسم بود چطور تبدیل به یه جسم شد انسانی شد و احتیاج به قضا داشت می خوابید حرف می زاد می خندید که سپاد خلقیه واجب الوجود که تبدیل نمیشه گفت معبود برون ذهیز امکان است ممکن به مکان در طلبش گردان است ناید به مکان آن نرود این زه مکان این است که درد وست بی درمان است یه خداوند فوق زمان و مکان این هست برای که خالق اینا بوده حالم همونی که بوده هست فرق نکرده و عرض کنم که این تجسم و تجسد و متجسد نسبت به خالق تعالی این یه نوع نقصی که به صورت مخلوق در من وارد زمان شد وارد مکان شد وارد مقدار شد از کم سپات خلقی پیدا کرد ما مخلوقات از کجا ما میدیم مخلوقاتو از همین سپات وقتی یا آدم بیاد همین صاحب داشته چطوری میتونیم بگیم خدا بوده به این صورت در منده اینم مخلوق نیمونه مسلمانانی که در واقع نه معتقدن به اون خدای یهودیت یعنی تصورشون از خدا اونطور نیست نه مادی محض هستن نه مثل مسیحیت عقیده دارن که خداوند به های مختلف در میاده اینا چی میگن؟ اینا حرفشون چیه؟ اینا میگن که خدا اعلام کرده در کتاب خودش مرده محتضر که داره جان میده من از شما به اون نزدیکترم ولی شما رو نمی نمیبینید یعنی خدا از عالم جدا نیست میگه حبا ما عینما ای اینما کنتم او با شما سر جایی باشید عینما تو بلدو پس و تولا به هر طرف برگردی با او روبرو میشید از این آیاتو دلیل میارن بعد میگن که نسبت خدا به جهان نسبت یه موجود مستقل نیست نسبت محیط به مهات الا انه به کل شئی محیط یعنی اون یه حقیقتی است که باطن عالمه و مهیط بر ظواهر عالمه و از جدا نیست از آلم یعنی وحدت وجود صحیح اینه یعنی در هستی خداست و آثارش هیچ کس دیگه نیست خداست و آثارش خداست و آیاتش خداست و تجلیاتش هیچ خبری دیگه نیست لا ای صفدار دیار دیاری جزء نیست مخلوق رو یه چیزی مستقل در برابر او نمیدونن این اشعه خورشیده این نور اوست این سن اوست این آثار اوست فنظر الهی آثار رحمت الله آثار رحمت الهیات همه برابر این تصورشون اینطوری میگن که ظاهر عالم همین زواهرست که می‌بینیم اتم‌ها ها و انجری ها،, ها بر ما ظاهر نیست برای دانشمندانش ظاهره دانش معلوم شده پس اون هم ظاهره باطن حقیقت علوهیته که محیطه بر همه این عالم و همراه همه موجودات. نوع همراهیش رو نمیتونیم تصور بکنیم ولی خودش اعلام کرده که از کنم که ودق از خلق مل انسان الانسان و نعلم و ما تو وصف بهی نفسو ما انسان را پریدیم از وصف های نفسانی اونم آگاه هستیم و نحن و اقرب و الیه من حبل الورید و ما از رگ یلن اون نزدیک ازدیکتریم ولی محات هیچ محیط رو نمیتونه درک کنه چون اگه اون رو درک کنه ما محیط میشیم بر اون اون محیط بر ماست ما مهات ما او هستیم از آثار و تجلیاتش میتونیم او رو بشناسیم این ها فنظر آثار رحمت الله به هر حال این تصور صحیح قرآنیست از ارتباط اون مبدع که باطن حقیقیست با ظواهر عالم. در اینجا اده از مسلمان ها راه یهودیت رفتن که خودشون هم صدفی میدونن و قرآنی میدونن و معتقدن که خدا رو عرش نشسته حالا بعد در برابر این آیات محکمات اون متشابه و رو معنیش کرد استوا علال عرش معنی کرد که معنیش چیه به هر حال شبای جمعه پایین میاد روزای عرب پایین میاد وقتی پایین میاد معنیش اینکه که اونجا نیست یعنی یه موجودی است که عالم بر اون محیطه اون موها در عالمه اون در یه جزی از عالم قرار داره شما میتونید تمام هستی رو آپیده باشه اون وجود محض که هستی آفرینه که محا... محیط در موجودات مح... محات در موجودات نمیشه ولی اینه که شما میارینش پایین میبرین بالا عالم بر اون محیطه آلم احاته بر اون داره عالم اون را پرا گرفته و بعد میگن که دست داره برای که گفته یدالله حقایدی هم چشم داره میگن این نکه به به این ظواهر آیات میچسمند و اگر کسی مثل ایشون چه نقل کرد واسمانی به یکی از همین علماء سلپی که داشت درس میداد یا یه همچین موضوع تر دادش درمده شما منحرفید زالید گمراهید حرفا چیه خدا دست داره چش داره پایین میاد بالا میره رو عرشه پالا از این حرفا آمه ها از ابن تیمیه گرفته ابن قیم جوزیه که ما همش فریاد زنیم که آقا ما وهابی نیستیم ما صدفی به اون معنی نیستیم ما مسلمان آزاداندیشیم تو این فرقه هر کسی هر چی هر حرف حساب بزنه قبول داریم آقا شیعه امامیه وقتی میگه سه طلاق در یه مجلس باطله یعنی سه طلاق نمیشه یک طلاق بیشتر نیست ما حق داری از طلاق مراتان همسا کن به معروف و اون تصریح به حساب کنم که ولی حالا ارسانت بگن که این اینتی در یه جای مونا میگن آقا عشد علیه ولی الله نبوده شما اضافه کردی جمع اونا حق دارن خود علمه قدیم شیعه مثل شیخ صدوق در کتابش کفته این المفوزه لعنه هم الله و احالیس هم وزاد و فل از آن عشد علیه ولیالله مرته این مفوزه قولات از خانم که این رو در از آن اضافه کردن ولی نبوده در اصل. خون نداریم. مزونی که ما تابه اونا نیستیم و از این جهت خیلی اون دسته با ما نظر خوشی هم ندارن میگن اینا هنوز شیعان هنوز گیر چون ما در توحید عبادت منطق رو قبول کردیم لا تعبد الا الله جز خدا کسی معبود نیست عبادت نباید کرد سجده و تواف و قروانی و زب و این کارهایی که برای امام زده میکنن که آجت بده به نظر ما اینا غلط همه ولی در توحید صفات در توحید صفات با اونا تفاوت داریم نمیپذلیم حرف اونا رو این دنباله افکار یهودیه اما قرآن کریم به لسان قوم سخن گفت و ما ارسال نام رسولن الا بلسان قومه در لسان قوم تشبیه، مجازات، استعارات، تلمیح این صنایع بوده. تو اشعارشون اشعار دوران جاهلیت و سبع معلقه همه چاپ شده، ترجمه شده. عبدالمحمد آیاتی ترجمه کرده معلقات سبعه رو. خیلی زیبا ترجمه کرده. شما بگردید گردید تشبیحات مجازات اینا زیاده در زبان عرب ابن جوزی خودش همبلیه ابن جوزی بغدادی آدم زیرکی بوده وقت بالایی منبر بوده یه دسته شیعه بودن در بغداد یه دسته سنی دامانه با هم جنگ و جدال داشتن ازش میپرسن که آقا خدافای پیامبر چند نفر بودن میگه اربعه اربعه اربعه سه چهار تا دواز تا ش ها گفتن ببین این شی از نظر ما سیا میگن خد پابی رو این چهار تا داره با تکید میگه چهار تا چهار تا چهار تا گفتن که آقا از کنم که جانشین بلا پس پیغمبر کی بوده گفت اونی که دخترش تو خونه اون بود سنییا گفتن دختر و تو خونه پیغمبر بود <تصفيق> شاه گفتن دختر پیغمبر تو خونه علی بود فرار کرد از شنگش این کتابی داره به اسم سید الخاطر کتاب خوندنیه در اونجا به همین صدفی ها اعتراض میکنه میگه با این که من هنبلیم و احمد هنبل خیلی محدث و حدیث گرا بوده قرآنگرا اونقدر نبوده ولی آخه شما فکر, فکر نمیکنید که این زبان عربی این چیزا توش هست یه در احادیث پیامبر هست که مرگ رو روز قیامت سر می‌برن شما چی می‌فهمید از این آیا نمی‌فهمید یعنی در اون عالم دیگه مرگ نیست لا یذوقون الموت الا الموتۃ اولا. منظور اینه نه که مرگ یه چیزی باشه بیا اونجا سرش رو ببرن میگه چرا نمی‌فهمید این مجازات رو مگه شما اهل زبان نیستی؟ یه داستانی آورده از یه شخصی به اسم خنسا یه زن شاعری بوده زمان حجاج ابن یوسف بوده این میاد تملق میگه یه باسه حجاج که مرد خونریز پاسلی هم بوده اشعاری میسازه حجاج به از کنم که زیر دستش میگه اقتالسانه ها زبانشو کوتاه کن یارو میری یک خنجر میری زبانتو در رو خوامم من میخوام بزنم میگه بابا من خودم شاعرم منظوری که به من سله بده صحبتم کتابش بگرم به کارم نه اینکه زبان منو ببری میرن پلو حجات میگن وی چونه گفتی اقترسان ها نادان من گفتم یه چیزی بهش بده روانش کن بره زبانش کوتاه کن نه اینکه زبانش ببری <تصفيق> بعد اینا رو شواهد آورده میگه پیانبر ازش پرسیدن که از روایات خودشون روایات خود احدثان از پیامبر پرسیدن کدومی که از زنانت زودتر به شما ملحق میشن فرمود که اطوله هن نه اون که دستش از همه درازتره زنها اول متوجه نمیشدن هی دستاشون رو با هم اندازه میگرفتن بعد فهمیدن که منظور پیغمبرون که اون که دست و بازتر به قول ما ایرانیا. بیشتر به اون زینب منتجه شدی که از همه زودتر پود شد و دست دل باز سر بود دائمان انفاق میکرده این هر به هر حال مصدود این است که ایشون میگه بابا این آیات که میگه خدا جهان آفلیت سپس بر ارش اداره خلقت قرار گرفت منظوری است که خداوند هم علت مجده است هم مدیر آلمه ازاره کننده جهانی نه این کار در یه جایی گرفته نشسته و بعد پایین میاد و بالا میرو بداخره از کنم که بیانتی دارن که میگه این نکبه ایونه نا یعنی تو زیر نظر ما هستی عرب میگه ازحب الا این الله یعنی ازحب برو الا حفظ الله بر, بر حفظ خدا باشی مثلی خدا همیشه نگاش میکنه و موازه بشه این از این شواهد به اصطلاح مخصوصا معتزلی های اهل سنت مثل زمخشری دست به کشاف و دیگران خیلی آوردن اشعار بردن اینا که نشون بدن و با شما ارز کنم که چسبیدید به زواهر لغت و دور شدید از معانی معانی گاهی مجازی استعاری کناهی داره فلان داره ایناست که بنابراین باز اون دسته از مسلمان هم که تصورشون همینه که جهان محیط بر خداست خدا محاس داخل در جهان پایین میاد بالا میره گایی اونگوش از گایی اونگوش از گای رو عرش گای تو فرشه از کام هم اینا همون دنباله فکر یهودیه و الهیات یهودی دقیقا همینطوره نگاه کنین مثلا در تورا تومده که خدا جلوی سپاه موسا راه میرفت اون پیشرو بود بسته اینا دنبال او بودن یعنی مثلا خواسته که خداوند تایید کرد اون سپاه رو از کنم که جلوی اونها بود و و خنده‌دار اینه که گلدزیهر یه مستشرق بسیار پرمطالعه یهودی است و رفته جسته توی قرآن آیاتی رو که با یهودیت میخونه اونا رو مثل همون الرحمن الرحش، ثباب پار نرفا و روایاتی که آوردن که بله میاد پایین و میره رو میره باید. همه اونا پیدا کرده که نشون بده که تورات رو ارز کنم که قرآن هر دو یکی هست. یه جور خدا رو معرفی کرد. در حالی خودش هیچ کدوم عبود نداره. یهودی یعنی درست هم نیست. خلاصه. ولی خب محقق پرتبانی مطالعه کرده اینا هم. اونتا نمک خورده و نمکتان شکسته این باز مدتی خودش خودشو با مسلمان ها موافق نشون داده با اون چیچی ملا تاهر که رئیس کتابخانه بزرگ دمشقه با شاگه او شده عربی از او یاد گرفته مطالب یاد گرفته بعد اومده کتاب نوشته و نویسنده 23 سال یعنی علی دشتی بیشتر از او گرفته کتاب 23 سال یا به هی میگه گل زیهر در درس های از اسلام اینطوری میگه که ما در سجر جوابش رو خیانت در گزارش تاریخ که حالا جلد ها هم تقریبا یه زنیمه کردم اما این روزا یه سلام نزدیک انتشارشی چاپه جدیدش با تصدیهات و اضافات اینا این شاید به توپیق خداوند از شاب در بیاد بلکه خدمت پرهنگی دینی باشه و هر حال مقصود این است که این ماجرای تصور این مذاهب گوناگون در مورد خدای تعالی بعد از پیامبر ادAutoHideان کسی که علم الهی رو بهتر از همه صحابه گفت بیان کرد حضرت امیر شو این نخل بلاغه رو ملازمه کنی گیرم بعضی هاش مال علی نباشه بلاخره تو این همه خطبه و نامه اصلی از علیه هست قطعا هست مخصوصا سیر رزیه از کتاب های عدساندت بیشتر جمعه کرد. نامه های هست در کلمات قصارش کلمات کوتاه فوق از توحید ان لا تتوهمه و الادل ان لا تتهمه توحید هنی که تصور و توهمی را به خدا نکنی عدل این است که خدا رو متهم نکنی در یه جمله کوتاه چقدر قشنگ میگه. از توحید الله تطب او تویید که توهم در خدا نکنی مثل انسانی بالا بالانش پایین نیاز عدمنی که خدا رو متهم نکنی از توید الله تطب او العدل الله تته او متهم نکنی بود یا سان میگه که مع کل خدا رو ذره وضع لاب مقارنه با همه اشیاء هست ولی قرین اونها نیست همدوس اونون نیست مثل که من بایشون هستم مع کل شیء لا و غیر کل شیء و غیر از اشیاء لا مزایله ولی اونها رو ترک نکردی با اوناست فاعل لاو به معنه الحرکات آله فاعله ولی مثل انسان حرکت و آلتی نداره دست و ابزاری نداره که اینطوری کار بکنه جهان رو با اراده آلم و اراده شیعان یقوده لهو کن پکن متوهدون از لاو سکنه یستعنتو توبه. او در وحدته اما در تنهایی نیست خانم من گاهی گریه میکنه میگه خدا قسم میخوانم بس خدا خدا تنها میگم او همه چیز داره من تو تنهاییم من تنها که یاد یاد به هم سر دارم او این داره قدرت داره کمال داره هرچی میخواد اینجا هست همه کمالات از اونجا آمده تا اونجا نبوده اینجا نمیامده بله ولا یا سوه شده فقده طوری نیست که چیزی نداشته باشه به وحشت بکنه از فقدان او که حالا اون ما نداریم به هر حال از کنم که ما وحدهو من کیفه کسی که کیفیتی برای خدا قائل باشه مبهد نیست مثل اسید سودپوریک مثل آب تشکیل شده از اکسیجن و ایر رو یک کیفیتی داره ذات الهی اینطوری نیست چون این سفات خلقه این سپاته ممکناته، اون واجب الوجوده. برحال سخن اینه، پس ببینید دیدگاههایی که نسبت به خلاه تعالی و ارتباط اون باطن حقیقی با عالم هست از همه معقولتر همین دیدگاه قرآنیست به شرط اینکه آیات مجاز و کنایات اینا رو بپهمیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.